ژن خودخواه نوشته ریچارد داکیز فصل هفتم تنظیم خانواده بخش دوم پرورش یک جوجه پرنده کار پرهزینه‌ای است مادر باید برای این کار از نظر غذا و انرژی سرمایه گذاری زیادی بکند احتمالاً به کمک جفت خود تلاش زیادی می‌کند تا لانه‌ای بسازد و در آن تخم بگذارد و از تخم‌ها محافظت کند. پرنده های نر و ماده هفتهها صبورانه روی تخم می نشینند آنگاه وقتی جوجه ها سر از تخم در میآورند پرنده های پدر و مادر کم و بیش بدون وقفه و بی آنکه استراحت کنند تا پای جان در تهیه غذا برای آنها از خود مایه میگذارند. گذارند همونطور که قبلا دیدیم چرخ ریسکه که بزرگی که پدر یا مادر است در طول روز به طور متوسط هر 30 ثانیه یک بار غذایی بلانه می آورد پستاندارانی مثل انسان این را به شکل کمی متفاوت انجام میدهند اما مفهوم اصلی آن یعنی پر هزینه بودن تولید مثل مخصوصا برای مادر همچنان همان است معلوم است اگر پدری یا مادری بخواهد منبع محدود غذا و تلاش خود را بین تعداد زیادی بچه تقسیم کند در نهایت بچه های کمتری بزرگ خواهد کرد نسبت به اینکه سطح توقع خود را پایین بیاورد او باید بین بچه آوردن و پرورش آنها تعادلی برقرار کند. کل مقدار غذا امکانات دیگری که توسط یک فرد ماده یا یک جفت با هم جمع آوری می شود عاملی است که در محدود کردن و تعیین تعداد بچه ها نقش دارد. بنابر نظریه لاک انتخاب طبیعی میزان جوجه گذاری اولیه، یا بچههایی که با هم از یک شکم زایده می میشوند و غیره را طوری تنظیم می کند که در اکثر امتیاز ممکن را از منابع موجود به دست آورد افرادی که تعداد بچههایشان زیاد است تنبیه میشوند نه به این دلیل که کل جمعیت رو به نابودی میگذارد فقط به این علت که تعداد فرزندانی که زنده میمانند کمتر است ژن زیاد بچه داشتن نمیتواند زیاد به نست های آینده منتقل شود زیرا تعداد کمی از بچه هایی که دارای این ژن هستند به دوران بلوغ می‌رسند. آنچه در زندگی انسان متمدن امروزی رخ داده است که،, که اکنون دیگر میزان بزرگی خانواده توسط امکانات محدودی که والدین تهیه میکنند تعیین نمی‌شود. اگر تعداد بچه های پدر و مادر بیش از آن باشد که خودشان بتوانند به غذای آنها برسند خیلی ساده دولت یعنی دیگر افراد آن جمعیت پاپیش میگذارند و آن بچه های زیادی را زنده و سالم نگه میدارند. در واقع، چیزی مانع یک زوج پغیر نیست که آنها تا آنجا که توان جسمی زن است بچه بیاورند، اما رفاه اجتماعی چیزی کاملا خلاف طبیعت. در طبیعت، والدینی که بیش از توان حمایت کردنشان بچه می‌آورند، نوههای زیادی نخواهند داشت و جنهاشان، به نسل بعد منتقل می شود لزومی ندارد در طبیعت از میزان تولدهای ایسارگرانه جلوگیری شود زیرا از رفاه اجتماعی خبری نیست هر ژن افرادکاری در جا مجازات می شود بچه های دارای این ژن از گرسنگی می میرند از آنجا که ما انسانانه می خواهیم به روش های قدیمی ژن خودخواه که میگذاشت گذاشت بچه های فراوان خانواده با بی غذایی تلف شوند برگردیم ما این را که خانواده یک واحد اقتصادی خود کفا باشد کنار گذاشته ایم و به جای آن رفاه اجتماعی آورده ایم. اما از امتیازی که رفاه اجتماعی در جهت حمایت از بچه فراهم می نباید سو استفاده کنیم بعضی ها پیشگیری از آبستنی را خلاف طبیعت می دانند من می کنن. زیرا استدلال می که این کاملا خلاف طبیعت است مشکل اینجاست که رفاه اجتماعی هم خلاف طبیعت است فکر می کنم اکثر ما بر این عقیده ایم که رفاه اجتماعی چیز مطلوبی است. اما نمی توان رفاه اجتماعی خلاف طبیعت را داشت ولی کنترل زاد و ولد خلاف طبیعت را نداشت. چون در غیر این صورت نتیجه نهایی فلاکتی است بیش از آنچه طبیعت بر ما تحمیل می کند. شاید رفاه اجتماعی ایثارگرانه ترین نظام شناخته شده در دنیای حیوانات باشد. اما هر نظام ایسارگرانه ذاتا ناپایدار است. زیرا در معرض سوء استفاده های افراد خودخواهی قرار می گیرد که منتظرند از آن به نفع خود استفاده کنند. آن انسان هایی که بیش از حد توان پرورش بچه می آورند، احتمالا در بیشتر موارد بیعقلتر از آنند که بشود اتهام بهره برداری آگاهانه و فرصت طلبان را به آنها نسبت داد. از نظر من بیشتر باید رهبران و سازمانهای پرقدرتی مورد سرزنش قرار گیرند که عمدن آنها را به این کار تشویق می کنند. برگردیم به حیوانات در محیط طبیعی. استدلال استدال در مورد میزان جوجه گذره را میتوان به همه نمونه های دیگر که وین ادوارز ارائه کرده بود تعمیم داد. رفتار قلم سلسله داری، سلسل مراتب حاکمیت و غیره، برای مثال با غرغره را که او به همکارانش مورد بررسی قرار دادند در نظر بگیرید. این پرنده ها خلنگ میخورند. و بوتزارهای آن را به قلم رفایی تقسیم می کنند که زارم بیش از نیاز واقعی صاحبان قلم رف قضا دارد. آنها در ابتدای فصل بر سر تصرف قلمروها میجنگند اما بعد از مدتی به نظر می رسد بازنده ها شکست خود را پذیرفتند و دیگر نمی جنگن. آنها راندههایی میشوند که هیچ وقت قلم رف ندارند و تا پایان آن فصل از بیقضایی تقریبا رو به مرگند. صاحبان گاه صاحبان قلمروپ زادآوری این واقعیت که بی قلم ها هم توانایی زاد و ولد کردن را دارند از اینجا معلوم میشود که اگر یکی از قلم دارن هدف تیری واقع شود یکی از آن رانده شده‌های سابق فورا جای او را پر و بعد زاد و ولد می‌کند تفسیر وین ادواردز از این رفتار افراطی در قلم داری همانطور که دیدیم این است که فرد رانده میپذیرد که در کسب بلیت یا مجوز زاداوری شکست خورده است و سعی نمی کند بچه دار شود. در ظاهر به نظر میرسد توضیح این مثال با استفاده از نظریه ژن خودخواه مشکل باشد. چرا آن رانده ها تا وقتی جان در بدن دارند دوباره و سهباره و باز بیشتر برای برکنار کردن یک قلم رفدار تلاش نمی کنند؟ آنها که چیزی برای از دست دادن ندارند ولی ثبت کنید؟ شاید چیزی برای از دست دادن داشته باشم قبلا دیدیم اگر یک صاحب قلم رو به نحری از بین برود برای یک رانده شده این امکان هست که جای او را بگیرد و به این ترتیب بچه دار شود پس اگر به این ترتیب احتمال دستیابی یک رانده شده به یک قلمرو بیشتر ازه احتمال به دست آوردن قلم رو از راه جنگ باشد شاید این ارزش را داشته باشد که به با عنوان یک فرد خودخواه منتظر شود با امید که کسی بمیرد به جای اینکه آن انرژی کم خود را در یک جنگ بیهوده از دست بدهد برای وین وینتواردز نقش رانده ها در رفاه گروهی است که در حاشیه صحنه ی ی تولید مثل به با عنوان بازیگر ذخیره منتظر بمانند و آماده باشند که پا در جای پای قلم رو دادی بگذارند که جهان فانی را بدا می میکند اکنون میتوانید که شاید این بهترین راهبرد خاص ژنهای خودخواه باشد که در فصل چهارم دیدیم میشود حیوان را مانند قمارباز در نظر گرفت شاید بهترین راهبرد برای هر قمارباز راهبرد صبر و امید باشد نراهبرد شاخ به شاخ شدن به همین صورت می توان به آسانی بسیاری از نمونه های دیگری که در آن ظاهرا حیوانات بی مقاومت وضعیت عدم زاداوری خود را میپذیرند با نظریه ژن خودخواه توضیح داد. شکل کلی این توضیح همواره یکسان است. برای فرد بهترین راه این است که به امید موقعیت های بهتر در آینده فعلا خشیشتن داری کند. یک فوک که برای صاحبان حرم مزاحمت ایجاد نمی کند، کاری به نفع گروه انجام نداده است. گوش خوابانده با منتظر فرصت مناسب است. حتی اگر این فرصت دست ندهد و او عمری را بیزاد و ولد بگذراند شاید به قمارش بیارزد. گرسه با بازدگری مجدد خواهیم دید که برای او چنین نیست و وقتی که موشهای قطبی مثل سیل از یک مرکز تجمع راه میافتند این کار را برای کاهش تراکم جمعیت منطقهی که پشت سر گذاشتن نمی کنن. تک تک افراد خودخواه آن در پی یافتن جای خلوتتری برای برای زندگیاند چیزی که با بازنگری مجدد مشاهده می شود این واقعیت است که هر کدام از آنها که نتواند چنین مکانی را پیدا کند از بین می رود و در این احتمال که عقبماندن ماندن قمار بدتری است تغییری به وجود نمی آورد این یک واقعیت کامل مستند است که تراکم بیش از حد گاهی میزان تولدها را کم می‌کند گاهی این قضیه به عنوان شاهدی برای نظریه وین ادوارز به کار می رود. اما چنین نیست. این قضیه با نظریه او به همچنین به همون اندازه با نظریه ژن خود جور در می آید. برای مثال در آزمایشی را در محفظی در فضای آزاد قرار دادند و مقدار زیادی خوردنی برایشان گذاشتند و اجازه دادند آزادانه زاد و ولد کنند. جمعیت تا حدی زیاد شد و سپس ثابت ماند. معلوم شد دلیل ثابت ماندن این است که بر اثر ازدهام از باربری ماده ها کاسته می شود. بچه کمتری میآورند چنین نتایجی را زیاد گزارش کردند. اغلب فوراً علت را تنش عنوان می کنند. البته دادن چنین نامی به علت آن کمکی به توضیح قضیه نمی کند. حال علت مستقیم آن هرچه باشد. ما به دنبال توضیح نهایی یا توضیح آن از نظر تکامل هستیم چرا انتخاب طبیعی مادههایی را ترجیح می دهد که میزان موالید خود را در زمان تورم جمعیت کم می کنند پاسخ وین ادواردز روشن است انتخاب گروه آن گروه های را ترجیح می دهد که در آن ماده‌ها جمعیت را میسنجند و میزان های خود را طوری تنظیم می‌کنند که از امکانات غذایی بیش از اندازه بهره برداری نشود در شرایط آن آزمایش و از طوری بود که هیچگاه کمبود غذا وجود نداشت اما از موش‌ها انتظار نمیرفت که آن را بفهمند آنها برای زندگی در دنیای طبیعی برنامه‌ریزی شدهاند و این احتمال هست که زیادی جمعیت شاخص معتبری برای قهتی در آینده محسوب شود نظریه ژن خودخواه چه میگوید تقریبا درست همین را اما با یک تفاوت اساسی یادتان هست که بنا به نظر لاک حیوانات تمایل دارم ترین تعداد بچه را از دید خودخواه خودشان بیاورند اگر تعداد بچهها خیلی کم یا خیلی زیاد باشد در نهایت تعداد کمتری پرورش خواهند یافت تا وقتی که به همان تعداد مناسب قناعت کنند. احتمالاً تعداد مناسب در سالی که جمعیت دوچار تورم است نسبت به سالی که جمعیت کم از متوابط خواهد بود. ما قبلا توافق کردیم که زیادی جمعیت خبر از گرسنگی و قهتی میدهد. آشکار است که اگر ماده ای با نشانه های از قهتی رو شود به خاطر منافع خودخانهش میزان زادنهای خود را پایین میآورد رقیبان او اگر در مقابل آن هشدار دهنده چنین واکنشی نشان ندهند سرانجام بچای کمتری خواهند داشت حتی اگر تعداد ها بیشتر باشد. بنابراین در نهایت با وین وارز به نتیجه یکسانی می رسیم. اما ما از طریق یک زنجیری های از نظر تکاملی کاملا متفاوت به یکجورسی دیم. نظری که خود خواهد تا با نمایش های ابراز وجود مشکلی ندارد. به یاد دارید؟ فرض وین ادواردز این بود که حیوانات به عمد جمعیت های بزرگ خود را به نمایش می‌گذارند تا به روشنی با گرفتن آمار تعداد موالی را متناسب با آن تنظیم کنند. هیچ شاهد مستقیمی وجود ندارد، که از آنکه هر تجمع در واقع یک ابراز وجود جمعی است. اما فرض کنید چنین شاهدی یافت شود. آیا تأثیری دارد؟ سارها در گروه‌های بزرگ بلانه می‌روند و می‌خوابند. فرض کنید نشان داده شود که نه فقط جمعیت زیاد در زمستان باعث شود باروری آنها در بهار بد کاهش یابد بلکه این هم مستقیما به خاطر گوش دادن هر پرنده به صدای پرنده های دیگر بوده است با آزمایش ممکن است نشان داد آنهایی که در معرض شنیدن صدای زرد شده بلند در تجمع فشرده سارها بودند نسبت به آنهایی که آبای آرامتر و کم صداتر به گوششان رسیده است تخم کمتری گذاشتند طبق تعریف این نشان می که آوای سارها یک نمایش ابراز وجود به حساب میآید. نظریه ژن خود آن را بیشتر به همان صورتی توضیح می دهد که در مورد مورشا دیدیم بار دیگر ما با این فرض شروع می کنیم که ژن داشتن خانواده بزرگتر از آن چه قابل حمایت است خود به خود تنبیه و از تعدادش در خزانه ژنی کاسته می شود وظیفه یک تخم گذار؟ عنوان یک فرد خودخواه، این است که مناسبترین تعداد توخمگذاری برای خود را پیشبینی کند که در فست آینده با آن خواهیم پرداخت. از فصل چهارم به یاد دارید که ما پیش پیشبینی را در مفهوم خاصی به کار بردیم ولی یک پرنده ماده چطور میتواند میزان مناسب تخمگذاری را پیشبینی کند؟ چه متغیرهایی حدث او را تحت تأثیر قرار میدهند؟ شاید چنین باشد که بسیاری از گونه ها میزان ثابتی دارند که سالانه تغییر نمی کند. بنابراین به طور متوسط میزان تغم مرغ مرخ ماهی خار یک است. ممکن است در سالهای خاصی که ماهی فراوان است برای هر فرد حد مطلوب موقتاً به دو تخم برسد. اگر مرغان ماهی خار راهی نداشته باشم که از پیش بفهمند که کلن در این سال خاص ماهی فراوان است یا نه نمی توانیم از ماده ها این انتظار را داشته باشیم که تن به خطر بدهند و منابع خود را صرف دو تخم کنند. زیرا این کار آن موفقیت را که در سالهای عادی در تولید مثل داشتند کم می کند. اما شاید گناه های دیگری مثلا سارها وجود داشته باشند که اصولا بتوانند در زمستان پیش می کنند بهار آینده از نظر منابع غذایی چگونه است؟ مردم اطراف شهرها گفتهای قدیمی زیادی دارند که هاکی از چگونگی هوا در بهار آینده است. مثلا فراوانی میوه درخت رازش به سی پیرزنها چه درست باشد چه نادرست از نظر منطقی وجود چنین نشانه ممکن است و اینکه طبق اصول نظری یک پیشگوی خوب میتواند میزان تخمگذاری خود را هر سال طوری تنظیم کند که به باشد. میوهٔ درخت راژ ممکن است شانه معتبری باشد یا نباشد اما مثل مورد موشا به نظر نمیرسد که تراکم جمعیت پیشگویی خوبی باشد سار ماده در اصل میداند وقتی میخواهد در فصل آینده به جوجههایش غذا بدهد باید سر غذا با دیگر افراد گونه خود رقابت کند اگر بتواند به نوعی از تراکم جمعیت گونه خود در اطرافش در زمستان براوردی داشته باشد به ابزار قدرتمندی برای پیش پیشبینی وضع بهار آینده از نظر تهیه غذا برای جوجه هایش دست یافته است اگر جمعیت زمستان را زیاد و فشرده ببیند خط مشی محتاط او از دیدگاه خود اش ممکن است این باشد که تخم نسبتا کمتری بگذارد براوردش از میزان بهینه تخمگذاری کاهش یافته است ولی به بهmass اینکه افراد بر اساس تخمینی که از تراکم جمعیت دارند میزان تخمگذاریشان را کاهش دهند. هر فرد خودخوا به نفع خود به رقبا وانمود می‌کند که جمعیت زیاد است. چه واقعا زیاد باشد چه نباشد. اگر سارها بزرگی جمعیت را رو از روی حجم صدا در خوابگاه زمستانیشان حدس میزنند، برای هر فرد به منفعت است که در امکان صدایش را بلند کند. تا بیشتر مثل صدای دو سار باشد نه یکی این نظر که حیوانات یک باره با هم وارد کنند چند حیوانند در متن دیگری جی آر کرپس پیشنهاد کرده بود و این عمل از روی رومانی که در آن تافیک مشابهی توسط یک واحد لژیون خارجی فرانسه اثر جست عالی نام گرفت اقتباس شده نظر ما در این مورد این است که این تلاش جهت تشویق سارهای همسایه به کم کردن میزان تخمگذاری خود در حدی کمتر از میزان مطلوب است. اگر شما ساری باشید که در این کار موفق شده است به نفع شمای خودخواه است زیرا از تعداد هایی که شامل ژن شما نیست کم کرده اید. بنابراین به این نتیجه می رسیم که نظر وین ادواردز در مورد نمایش ابراز وجود میتواند نظر خوبی باشد شاید حق کاملا با او باشد اما دلیل اصلی چیز دیگری است در کل فرضیه ای از نوع فرضیه لاک توان کافی را دارد که از زبان ژن خودخواه جوابگوی همه شواهدی باشد که ظاهرا در تعیید نظریه انتخاب گروه هستند البته اگر چنین شواهدی پیدا شود از این فصل نتیجه میگیریم که تنظیم خانواده بر عهده والدین است به این مفهوم که آنها میزان زادآوریشان را بهینه سازی می کنند. نه اینکه به خاطر سلاح جمعیت از آن خودداری می کنند. آنها تعداد بچه هایی را که زنده میمانند بیشتر می کنند و این یعنی تعداد بچه هایشان باید نه خیلی کم و نه خیلی زیاد باشد. ژنی که فرد را وا می دارد بیش از اندازه زادو ولد کند در خزانه ژنی دوام چندانی نخواهد داشت زیرا زادگانی که دارای این ژنند آنقدر زنده نمیمانند که بالغ شوند به این ترتیب تا اینجا به ملاحظاتی درباره میزان بزرگی خانواده پرداختیم اکنون به تضاد منافع درون خانواده می‌رسیم آیا برای یک مادر همیشه به صرف این است که با بچه‌هایش رفتاری اکسانی داشته باشد یا باید بعضی را ترجیح دهد آیا خانواده باید در کل به عنوان یک واحد تشریک مسایی باشد یا حتی درون خانواده هم باید انتظار خودخواهی و دروغ را داشته باشیم آیا همه اعضای یک خانواده در جهت حد مطلوب یکسانی تلاش میکنند یا در مورد میزان حد مطلوب اختلاف نظر وجود دارد اینها سؤالهایی هستند که در فصل بعد سعی میکنیم به آنها جواب دهیم پاسخ این پرسش را که آیا بین جفتها تزاد منافع وجود دارد و آنچه را به این سوال ها مربوط می شود به فصل نهم هم موکول کرده ایم. جن خودخواه نوشته ریچارد داکینز پینوشت های فصل هفتم تنظیم خانواده در صفحه 110 گفته شده وین ادواردز که مسئولیت اعلام نظر انتقاب گروه بیشتر بر عهده اوست حالا توضیح در مورد این اوارد. برخوردی که با وین ادواردز شده ملایمتر از برخوردهایی است که اغلب با گذاران در دانشگاه صورت میگیرد چون اشتباه او به وضوح روشن است برایش اعتبار فوقالعادهای قایل شدند که توانسته است در مورد انتخاب ذهن مردم را رو روشن کند من شخصا فکر میکنم در این اینباره مبالغه شده است خود او بزرگ بزرگوارانه تغییر عقیده میدهد وقتی در سال 1978 میلادی در حال حاضر صفحه عمومی زیستشناسان نظری این است که نمی‌توان مدل قابل قبولی ساخت که با آن حرکت کند انتخاب گروه از انتشار بسیار سریع‌تر ژن خودخواه به سود سلامت افراد سبقت بگیرد بنابراین من نظر آنها را می‌پذیرم گرچه این تجدید نظر دوباره او بزرگوارانه است ولی یک بار سومی هم داشته است ندامت از ندامت ها در آخرین کتابش انتخاب گروه با آن مفهومی که مدت هاست میشناسیم اکنون کمتر از زمانی که چاپ اول کتاب من منتشر شد مورد توجه زیست شناسان است اگر شما غیر از این فکر میکنید اشکالی ندارد نسل جدیدی به خصوص در آمریکا پیدا شده است که بر چسب انتخاب گروه را مثل نقل و نواد همه جا پخش می کند. روی هر موردی که قبلا و از نظر ما هنوز، سرحتتا چیز دیگری مثل انتخاب خویشاون به حساب میآد آن را می چسبانند به نظرم بیهوده است که نسبت به چنین شلوغ بازی های کلامی زیاد حساسیت نشان دهیم. با وجود این می گوییم که کل قضیه انتخاب گروه یک دهه پیش، توسط جان مینارد سمیت و ادی دیگر حل و فصل شد و حالا جایی تعسف است که میبینیم یک زبان مشترک از ما دو نسل و همچنین دو ملت جداگانه ساخته است مخصوصاً این آزاردهنده است که این نایکدست بودن اصطلاحات فیلسوفها را که با کمی تأخیر تازه دارند وارد این زمینه میشوند آشفته و گیج میکند من مقالی انتخاب طبیعی، انتخاب قیشاوند و انتخاب گروه آلن گرافن را به عنوان یک تصویر روشن توصیه می کنم. وقتی امیدوارم که این قضیه یک گروه جدید طرفداران انتخاب گروه به طور مشخصی سر و سامان پیدا کند.